چو پرسندگان از هنر نشاید که پاسخ دهی از گوهر گهر بیهنر خار و زار است و سست به فرهنگ باشد روان تندرست الجميل به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ برنامه که می‌شنوید پنجره‌های رو به محتاب هست من حمید رضوی هدایتی راد هستم و آقای دکتر فریدون جنیدی مهمان که اعز کنم ایشان خودشون صاحب خانه هستند و یک چند شب ها ما در خدمت ایشون هستیم با شتاب حرف می‌ذاریم به خاطر اینکه هر چه زودتر برسیم به داستان‌های شاهنامه فردوسی سلام درود بر شما درود بر شما شاد باشید، فرخ زیوید، پدرام بابید پدرام یعنی چه های در پهلوی پترام یعنی برامش، با رامش زیستن در فارسی پترام شد پدرام و یعنی با رامش بزیوید بعد اسمشون پدرام هستی میشه گذاشته اسمون برد اسم پدرام خیلی خوش آماری شاد باشی. چه هم با سرمان هستی سرمانی خوش که بدون, باد با... بدون باران و بر برای کشور بسیار جای تأصف و واقعا اندوه و ولی برای من چون که میبینید اینو من میخواستم بکنم <تصف> <تصف> <تصف> یه ایران بیشتر ندار اولم گفتم من چهارت از لباس این گوشم و کاپیشن و ماشاءالله لاونیتی این خاصیتو ببینید می دیدید انسان ورزش بکنه و به راه نیاکان بره ورزش باستانی بکنه همیشه همینطور میمونه می ما هم باید ورزش باستانی رو شروع به نظر من هر ایرانی باید ورزش باستانی بکنه ما امشب به ادامه‌ی داستان پادشاه کیخسرو در خدمت استاد هستیم و جنگ ایران و طولان و تلفن‌های برنامه رو در همین آغاز من خدمتتون عرض می‌کنم 220 1400 هشتاد و پنج دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج و شماره پیامک ما سی است. پانسد هست پایگاه اطلاع ما w w هست. شما از طریق ماهواره به اقوامی که خارج از کشور هستند دوستان آشنایان که در خارج از ایران حضور دارند زندگی میکنند می‌تونید بفرمایید که از طریق ماهواره می‌تونن ماهواره هاتبرد می‌تونن تو بخش رادیو ها وارد بشن و رادیو فرهنگ آنجا هست میتونن برنامه های رادیو فرهنگ کمیتور برنامه ما رو بشنون ببخشیده از جام. آلمان من یک تلفون داشتم که خواهش کردن انواجش رو بفرمایید نمیتونن بگیرن سخت رو رادیو نمیتونن بگیرن آی دکتور از طریق ماهواره روی هاتبرد که برن دو بخش هستش یکی بخش تصویر یکی بخش صدا تو بخش صدای ماهواره که وارد بشن که رادیو ها هست اونجا رادیو فرهنگ رو میتونن پیدا بکنن با همین نام رادیو فرهنگ میتونن پیدا بکنن از این طریق میتونن بشنون خیلی از عزیزان که میدونن ما تلفن داشتیم و از طریق سایت وارد شدن و گفتم ما میگیریم و برنامه ها رو میشنبیم یا خیلی از اقوام، اقوامشون در میگن فامیلای ما، آشنه ما خوصم برنامه شما و برنامه های دیگه شبکی فرهنگ رو و برنامه پنجره رو به محتو بود در شبک های مختلف میشنوند و داشت یعنی تماس داشتیم بعد از این طریق رو راژیو شد. خب بریم شروع کنیم برنامه رو به امید خدا و مطلب دیگه که من میخواستم بگم همین ما با شما خوب میشنویم و خوب میپرسیم دقت کنیم من هم دقت کنم و امشب ماهرم من دیدم کامل نبود کم بود میخواستم بگم سودم. تو ما خودتون میریم بر دنبال کم بود نمره خودتون آه آه باشه باشه من خواستم میگم شما سوال نکنم حالا یک چیزی جا. که در شما هست من میپسندم این که این پیام هایی که میفرستن اگر نسبت به شما ایرادی باشه اونو میخونید بل باید کسی دیگه ممکن بود نخونه اینا رو به ضررش باشه ولی شما اینا رو میخونید و این شاشته توجه هست خواهش میکنم پس میشنویم داستانه پادشاه یکی خسرو و جنگ ایران و تورانو از زبان آقای دکتر فریدون جنوی صفحه چند هست این هم بفهم دارم؟ صفحه 371 یعنی رویه 371 دفتر دفن. دفتر دفن. خاطر داشته باشید که فریبرز اومد و پرسیدن ازش که رستم چه دستور داد گفت رستم فرمان داد که باید باید باید رعز و گاه یکی که تا درفش من آید بدید یعنی فرمان داد شما جنگ نکنید تا من بیام چون لشکر پدید آمد از زیدگاه بشد دیدبان پیش توران سپاه مخصوص لشکر فری برزه یکی لشکر آمد به از آن روی سوی همامونگ گذشت سپه بد بشد پیش خواهان چین که آمد سپاهی از ایران زمین ندانیم چند دست و سالار کیست؟ چه سازیم و در مان این کار چیست؟ بدو گفت کاموس رزمازمای به جایی که مهتر تو باشی به پای بمان تا هنرها پدید آوریم بمان یعنی اجازه بده تو بنشینی سر تا ما هنرمندی رو نشون بدیم بمان تا منرها و دید آوریم تو در بستی و ما کلید آوریم به پیران چنین گفت خاقان چین که کاموس را راه دادی بکین همه نمونه ها که کاموس آورده ولی می‌بینید که اینجا چو درسته ویراش خودم کم کم وارد تا بکنم متوجه بشن حالا با چون که به پیران چنین گفت خاقان چین چو کاموس را راه دادی بکین به کردار پیشآورد هرچه گفت که با کوه یار است و با پیل جفت به ایران نمانیم برگ درخت نه و نه و نه تاج و نه تخت بخندید پیران و کردآفرین بر آن نامداران و خاقان چین چو گردون تهی شد و خورشید و ماه طلایه برون شد زهرد و سپاه معلوم میشه اواخر ماه بوده باید. که دیگه ماه دیر طولو میکنه همون بیشفته یعنی بانگ، از روز بیستی یکم به اون سو باید. که ماه نیست در سمون. ماه نزدیک صبح طولو میکنه و حالا خورشید هم که رفعیه نه, نه خرشید هست نه ماه اواخره ماه رو نشون میده شگردون تهیی شد و خورشید و ماه تلاویه برون شد و هر دو از آن دیدگه دیده بکشاب لب که گردی برآمد به تاریک شب هماناکا آمد گپ پیلتن دمان و رزابل یکی انجامن از کجا میفهمه که در تاریکی شب که گپ پیلتن آمده برای که همونطور که هفته پیش از کردم فریبرز باشندگان این کوهستان البرز مرکزی هستند وقتی که اونا به طرف کوه هماون و جنوب توران برن از طرف از دیدگاه اونها، از طرف راست میرم اما از زابول اگر بخوان حرکت کنن از طرف جنوب یعنی از پشت سپاه میاد و بنابراین دیدبان ها میبینن که از طرف سیستان سپاه داره میاد همانا که آمد گفه پیلتن دمه و نوز زابول یکی انجمن چو بشنید گودرز کشواد تفت شب تیره از کوه خراب برفت چو گودرز روی تهمتن بدید شد از آب دیده رو خشنا پدید. گرفتند مریه دیگر را کنار زهرد و برامد خروشی بزار بدو گفت گودرز که پهلوان خوشیوار و جنگی و روشن روان. همین تاج و از تو گیرد پروخ. سخون هرچه گویی نباشد دروغ تو ایرانیان را ز مام و پدر بهی همزه گنج و ز تخت و کمر. چنانین این که ماهی به خاک درون سر سر در خلاک این سخنانی که گودرد یعنی پهلوان کردستان خوربران کردستان آزبانجان میگه در ستایش رستم پیشتر دیدیم که از سوی که به بگونه دیگه و از سوی که کابوس پیشتر یعنی همه داستان ایران و شاهنامه حکایت از ستایش تمتن میکنه و من اخیرا خوندم که یکی از این اسودان شاهنامه شناس در یکی از روزنامه ها گفته بوده که مصاحبه کرده بوده که تهمتن یک کسی پرگو و پرخور بوده و پهلوان ما نبوده پهلوان ما اسفندیار بوده جالبین که ام. یکی از پرزندان و بنیادنشابور پاسخ داد من نام نمیبرم ولی در روزنامه نوشتن که پاسخ یک دانشجو به آقای دکتر فلان و همه این سخنان رو اونجا گفت. چطور رستم پرگو بوده که کابوس میگه که بگیتی هنرمند و خاموش توی هنرمند یعنی شجاق یعنی پهلوان میگه هنرمند هستی اما خاموشی یعنی از خودت تعریف نمیکنه، چیزی از خودت نمیگی که پر بردگاه رو سیاو توی چطور باید یک چنین داوری یک استاد در بیکرز روزنما ها بکنه که یه دانشجو برو پاسخ بده که سکوت و مطلق شد بل ببینید شما همه شاهنامه حیكایت از ستایش رستمه چه پهلوانان چه پادشاهان چو دیدم نون این بیتو که ماهی به خاک بننگندرون سر تنندر هلاک چون دیدم کنون خوب چهره تو را همین پرسش گرم و مهره تو را مرا سوگ آن ارجمندان نماند. به بخت تو جز روی خمدان نماند. به دو گفت رستم که دل شاد دار. زغمهای گیتی سرازاد دار. روان تو از درد می درد باد. همه رفتن ما به با آورد باد. اینو دو سه بار در شاهنامه دیدیم که پهلوانان آرزو داشتن که در میدان جنگ بمیرن. برای پهلوان خیلی ننگ بود که تو بستر بمیره. حتما پهلوان باید در میدان جنگ بمیره برای دفاع از کشورش دفاع دفاع دفاع و بعد که متصمن یک داستان دییم هست و اون که خب اگر پیر بشه که نمیتونونه در میدان جنگ. پس این کسی که پا میشه حرکت میکنه هزار فرسخ از این طرف به طرف توران میره یا به طرف دشمن میره با جوون هم باشه یعنی وقتی که آرزو میکنم که رفتنشون به با آوردگاه اوبد در میدان جنگ باشه یعنی در جوانی بمیرم اگر در جوانی کشچه نشند در راهی میاند، اون وقت پیر میشند و در بستر جان خواهند برای پهلوانان ننگ بزرگی بوده. روان تو از درد بیدرد باد، همه رفتن ما به با آورد آو باد. سرافر زد گرد گیتی فروز، پش پس پشت او لشکر نیم روز. کار بزرگان و جنگ سپاه زرخشند و خرشید و گردند ما مقصود از رخشند و و گردند ما گذر روزگار بوده یعنی در این روزگار که خورشید و ما میگردیدن ج... می از مثلا فرض کنیم از ماه تیر اومدی به ماه امورداد ما چی شد بر شما چه گذشت نه اینکه به بفرسه از حال خرشید یا از حال ما مقصود از زمان گردش روزگار. روزگاره تراغوان از آن لشکر بیشمار بگفتند با مهتر نامدار که گر سوی اگر سوی ما پهلوان سپاه نکردی گذر کار گشتی تباه من در همه نسخه آمده ابر اگر سوی ما پهلوان سپاه نکردی گذر کار گشتی من پیشنهاد دادم اینجا بدهیم بگیم که که اگر بیاد پیوند درست میشه من کم کم خانندگان آگاه رو با شیوه کار دیرش خودم آگاه میکنم ببینید این حالا دوباره میخونم فراوان از آن لشگر بیشمار بگفتند با مهتر نامدار که گر سوی ما پهلوان سپاه نکردی گذر کارگشتی تباه درست اینکه که یه پیوندی بین سخن پیشین و پسیم سپاس از خداوند پیروزگر که او آورد رنج و سختی به سر همیشه بزیش نام بردار و شاد در شاه پیروز بیتو تو مباد نشکر آراستن تورانیان و ایرانیان چو از کوه بفروخت گیتی فروز دو ظلف شب تیره بگرفت روز از آن چادر غیر بیرون کشید به دندان لب ماه در خون کشید این یکی زیباترین سحن پردازی های جهان اصلا در زبان دیگه که ما چنین چیزی نداریم در ایران هم از این زیباتر نیومده من در برنامه پیشین این که فرموزید. گفتم حالا دوباره باز میگم برای کسانی که نشنیدن این درست شده 20 درست شما ما صوبه نزدیک صوبه شما از دور ماه رو میبینید اندازه کوها آغوش باز کرده منطقه باریک نزدیک نرسیه به سفیده دن ده. با کوه مقایسه کنید میبینید که چند تا تپه و در آغوش این زیره این ماه هست. من با دست خودم باز میکنم با دل. دست نشون میدم برای, برای اتاق خوبه. <تصفيق> اما بدونید که در طبیعت ماه این اندازه بزرگ شد. نزدیک هم هست نزدیک کوه هست. بزرگ اما باریک. کم کم کم کم نبز زمان میزنه و خورشید آهنگ بالا میکنه و همطور که میاد بالا رنگ سفید نقره‌ای کامل ماه کم کم کم کم به رنگ زرد و کم کم به رنگ قرمز در میاد و بعد در پهنه گستری خورشید هنوز نیمده هنوز پشت کوه هست اما در گستری انبار زیبای خورشید که مواج داره از پشت کوه میاد بالا ماه پنان میشه یعنی دیگه دیده نمیشه خورشید که میاد بیرون اصلا دیگه ماه دیگه دیده نمیشه این شبه بستارشین صوبه هنگام طلوع ماه بوده و این منظره رو برانش که اون از کوه گیتی فروز روشن شد یعنی خورشید و دوزور شب تیر روز شب تیر رو گرفت از چادر غیر بیرون کشید یعنی دیگه روز شد کم کم به دندان لب ماه در خون کشید یعنی ما خورشید ماه رو بوسید لبش خونین شد یعنی اینکه ماه رنگش کاملا سیمین بود و سرخ شد لبش و در خورشید تنهان شد و در آغوش خورشید دیگه دیده نشد این زیباترین سحن آراهی جهانه برای ماه و خورشید فقط موجوده عظیم و عجیب فردوسیه تبیره برای آمد زهرد و سرای برفتند گردان لشکر زجای سفهدار هومان به پیش سفاه بیامد همی که ات نگاه. بیامد از قند به پیران بگفت که شد روز با رنج بسیار جفت. زدیبا سرا... یکی سبز پرد سرای، یکی اجده فش درفشی به پای، گمانم که رستم نزدیکی شاه به یاری بیامد بدین رعز به گفت پیران که بدروزگار اگر رستم آوید بدین کارزار. همون همان گسته لشگرگه هم درکشید بیام سپه را همه همه بینگرید. آنجا دمان سوی کاموز شد. دمان یعنی نفس زنان. سوی کاموز شد به نزدیک منشور و فرطوس شد. که شبگیر زیدر برفتن پگاه. شبگیر یعنی صبح زود نزدیک برامدن آفتاب پگاه هم همین منیر داره که شبگیر در برفتم پگاه بگشتم همه گرد ایران سپاه به آوری فراوان سپاه آمده است بسید کینه ور رعز آمده است بدو گفت کاموس که پرخرد دلت یکسر اندیشه بد برد. چون اون دان که که خسرو آمد بجنگ، جنگ مکن خیره دل را بدین کار تنگ خیره این بیوده درفش مرا را اگر ببیند به جنگ به دریاوی چین برخوروشد نهنگ یعنی نهنگان در دریایی چین اگر درفش من ببینن ببیند خوروش برمیتوند از درست برو رولشگر و, و برکش سپاه درفشن درآور آور با آوردگاه دل پهلوان آن سخون شاد گشت از اندیشه رستم آزاد گشت ازان جاگه پیش خاقان چین بیامد ببوسید روی زمین بدو گفت شاخا انوشه بوی روان را به دیدار توشه ببی یعنی دیدار تو توشه روان ما باد بریدی یکی راه دشوار و دور خریدی چنین رنج ما را به سور بدین با با آزرم افراسیاب گذشتی به کشتی در آب سپاه از تو دارد همین پشت راست چنان کن که از گوهر تو سزاست بفرمود تا مهد بر پشت پیل ببستند و شد روی گیتی چونیل از گرد سپاه. بیامد گرازان به قلب سپاه شد از گرد خوشید تابان سیاه. رست میخوایید که استراحتی بفرمید آبی بخورید پیامک ها زیاد هسته. خوش میکرم. بعضی بعد. از پیامک ها... مسئولیت من هم زیاد میکنه مسئولیت من هم زیاد میکنه چشم آقای دیاکو سپاس از شما که با درود جناب هدایتی را در خاندن پیامک ها دار امانت دارم من میکنم از اولین پیامک هایی که آمده میخوانم با توجه موضوع برنامه. بعضی از موضوعات هستش که به این برنامه مربوط نمیشه با درود خدمت آقای دکتر جوندی و آقای هدایتی آیا در یا در دت هوش درست دتحوش. دتحوش. دهی. دهی. در زمان باستان صدقه دادن از بحر تندروستی راست بوده با درود پرویز از کرج درود بر شما نه صدقه اصلا در ایران نبوده و یعنی دولت‌ها موظف بودند که کسانی رو که آسیب دیدن از مثلا فرض کنید رو ملخ خورده یا بارون نعیمت یا سیل برده دولت ها اونها از محل دارایه که داشتن و اونها یاری برسنن مردم هم به هم کمک میکردن نیجه. مردم که شدن همسای... همسایگان به هم کمک کردن ولی نه سطح دادن در ایران نبوده بقید. درود بر شما معنای واجه سپنج در بیت یکی گفت کم در سرای کم در سرای سپنج نباشد هنرمند بی درد و رنج چیست چه ریشه است؟ مهمانی است که خرجش با خودش باشه مهمان یعنی بزرگ خانه کسی که وارد میشه به خانه و هرکس که باشه با او رفتار میکنن که گویا خود بزرگ این خانه است یعنی بالاترین جا بنشونند بهترین غذا رو جلس بذارن بهترین خدمت رو بشبه کنن و من خودم یکی از زیباترین خاطرات زندگیم اینی که سال پنجم ابتدایی بودم مثلا یازده ساله بودم می‌نمیدم چطور شد که قرار شد با رvalueOf پدرم ما تا وسونا هم میرفتیم روستا با رvalueOf پدرم من بیاد شهر و چه دلیلی بود نمیدونم الان به یاد ندارم چون من ترجیح اینا که نداشتم که ولی یک یه دلیلی بود که من رvalueOf پدرم می من تنها نباشم همچی یعنی ایشون تنها نباشه نه. بعد مادرم به من گفت که میری برو خونه حمصا یه همسایه بسیار خوبی داشتیم که اهل اردبیل بودند، بسیار بسیار همسایه خوبی بودند و این اون زمان هشت تا پسر داشتن اینا، دا. از،, از پسر چهل ساله گرفته تا ناصر، ناصر که کوچیک‌تر بود و نادر که همسال من بودن بله. چند تا هم خواهر داشتن، یه خانواده عجیب بودن اون زمان‌ها اینجور خانواده ها بود، ولی دیگه الان که نمیشه چنین خانواده‌ای وجود داشته باشه. من رفتم در خانه همسایه در زدم و اونم خواهر همین ناصر اومد ناصر احدی نامشون میبرم نمیدونم الان بعد از شهر محفر اومده خواهر ناصر اومد به در واسه کرد گفت افسریدون توی گستان گفت چیکار داری گفتم مادرم گفته بیام خونه شما گفت بیا بیا, بیا بفهم خوشمون بیا من درست خونه اینا بودم شما نمیدین اینا برای من چیکار کردن برای یه بچه 11 ساله بهترین جا بهترین غذا بهترین اینقدر اینا به من محبت کردن مثل یک بزرگ بزرگ خانواده مثل انسان شهست ساله و یک زیباترین خاطرات من همین دو روزی که خونه ناصر اهدی بودم و روزگاه رو کندم اینکه مهمان در آین ایرانی بزرگ خانه و همه خدمت ها رو برای او انجام میدن منطقه کسانی هستند که اینها یه جا میخوان خصوص در کاروانسرها می ها میبینید در هیچکس پول نمی کس فقط یک جا میخواستن و خرجشون با خودشون بوده. این به این میگفتن سپنج یا سپنج در چانمه بسیار اومده که شما سپنج میخواید یا نه مثلا اونا میگن و در اردا وی راه و دیگر کتاب ها بسیار تحکیش شده که کسانی که از دور یا نزدیک اومدن شما بهشون جا بدید جا بدید سپنجی سرای بدید بهشون که بی جا نباشن اجاق داشته باشن گرما داشته باشن و کسانی که این کارو نکنن انسان های بد نادرستی هستن حتما به این موضوع خیلی اشاره شده و فلسفی کاروانسراها هم در ایران پدید کاروانسرا همین بوده که کسانی که میخوان مسافرت کنن از یک شهر به یک شهر یا از یک گستان به یک دیگه به این راه جا داشته باشن بیشتر این کاروانسراها هم خب علاقه همه رو علاقه که دولت میساخته اما ممکن بود که کسانی هم باشن که به درگذشت بخوان که از ما دارایی اونها کربوهیدرات یا آبنبار اینا ساخته بشه لا. و از این کربوهیدرات و آبنبارها ما هنوز داریم البته دیگه استفاده نمیشه و ولی داریم بنابراین سپنجی سرای به جهان رو به سرای سپنج همانند کردن که ما در اینجا میایم و به خرج خودمون زندگی میکنیم و بعد میریم البته یه خود عمیق‌تر نگاه کنیم به خرج خودمون زندگی نمی کنیم اون اون تهش و اون روزی هم از توی خداوند, خداوند به مادا میشه و چنین نیست اما خب دیگه جهان رو سفنجی سرای حساب کردم هنرمند بی درد و رنج نیست نباشد هنرمند بی درد و رنج بله این هم ادامه مخصوص مقصود بود دیگه بله. در هنرمندان درد و رنج میکشن در جهان مقصودی بعد اینو حسن آقا از لای زنگان فرستادن بعد سؤال بعدی ریشه با سلام بر استاد جنیدی عزیز لطفا ریشه دروغ و راستی را در زبانهای مختلف بیان کنید آیا دروغ با دجال ارتباط دارد؟ با چی؟ دجال نه نه نه اصلا دجال متعلق به ایران نیست اما دروغ و درو و دروژ و دروژ و دروغ همه اینها گونه‌های های مختلف دروغ منطق باید ما بدونیم که دروغ تنها اینی نیست که به زبان میاد هر کاری که نه بر بنیاد هنجار زیست و جهان و آفرینش عزت بشه اون رو دروغ میگفتن مثلا فقط اون که اجده ها که همون آتش باشه اون رو در ایران باستان میگفتن دروغ دروغ عظیمی که مرتبا آتش از کوموداهنش بیرون میاد و زندگان رو میکشه از بین میبره تباه میکنه اینو دروغ به شمار می همه اون چیزی نیست که بر زبان رانده میشه دروغ، هر چیزی که در حقیقت نه بر بنیاد حرکت راست و درست آفرینش ایزت هست، اون دروغ به شما میرده. نه، بعد پرمک بعدی ما با سلام خدمت آقای دکتر جنیدی عزیز خط و نگارش در ایران کوهن هم در کوهن هم آیا خط میخی بوده و آیا شما در تعریف آثارتان فقط از شاهنامه استفاده کردید با تشکر فراوان شما شاد باشید پیشتر از خط میخی و خطای دیگه داریم و در تپه احیای کرمان و تل ابلیسی کرمان قبلا خطای پیدا شد که چارزار ساله بود و اخیرا در تپه حسار مزدیک گرمسار و پیشوا بیشتر از 100 لوحه خط پیدا شده مربوط به زمان پنجزار سال پیش البته باز هم ها در نظر دارن که این خطا رو بگن پروتو ایلامی، ایلام رو با این بنویسن که از ایران جدا به شما رو بیارن ولی این لوحه هایی که پیدا شده متعلق به پنجزار سال پیشه در تپه سار پیشتر از تشکیل دولتی به نام خوچ که ما میگیم خوچ یعنی خوز و خوزستان و اروپایی میگن ایلام، برای که ایلام نامی بوده که بابلیان به خوزستان ما دادن و بعد اینا با عین می‌نویسن که به طور کلی ایلام رو از ایران جدا کنن و جایی دریق و اندوه که در یک کاوشی سری پیدا کردن که 3200 سال غیر بوده و بعد این سر سیاه شده صورتش سیاه شده خودو باد کرده این دانشمندان اروپایی گفتن که احتمال میره که ایلامیان از اجاد سیاه بوده باشن. برای سری که 3200 سال توخیر بوده اگر واقعا این ایلامیان با این که اونا میگن از نژاد سیاه بودن چطور در خوزستان ما یه نفس سیاپوس نداریم نه اینجا خوزستان بوده و این نوشته هاییم که پیدا شد متعلق به 5000 سال پیشه البته در جی رفتم که اخیرا لوحه‌ای 6000 ساله پیدا شده نشون میده که خط در ایران سابقه کهن داره و بسیار پیشتر از سومر مادجان دا خط داشتیم منطا با خطهای خوزستان که اینا میگن ایلام انواع خطی میخی آغاز شد و, و ادامه پیدا کرد خطی میخی برای یه نویشتن سنگ کنده ها اینها داره و خطوطی دیگه ای داشتیم. روز پارسی که بعدن که اسلام پذیروف ملقب شد به ابن وقفه هفت گونه خط رو برای ایران نام میبره. هفت گونه خط. من حالا چند تا میگم که دی دبیره، آم دبیره یعنی هم دبیره. گشته دبیره، نیم گشته، راز دبیره، ویست دبیره و اینها در ایران هفت گونه خط داشتیم. با توجه به که ببینیم بشموریم الان در جهان کدوم کشور هست که دو گونه خط داشته باشه. ما هفت گونه خط. اما اروپاییان معتقدن که در ایران فرهنگستان نبوده، آموزش نبوده، خط نبوده، کتاب نبوده و شاگردان اونا در دانشگاه های ما همین،, همین دروغ ها رو میگن به دانشجو و دانستان باید همین ها رو بینویسه روان و نیاکان خودشو آزار بزن تا از این ها نبره بگیره. شما شنونده برنامه پنجره های رو بمحتاب هستید آقای دکتر فریدون جنهیدی استاد فریدون جنهیدی داستان های شاهنامه فرگوسیده برای اما میخوانند و تلفون های برنامه 222-4185 222-4185 222-5888 دو صفر دو و بیست، پانسد و هشت و هشت، دو صفر و شماره پرامک سی هزار پانسد و پنج و هشت، سی هزار پانسد و پنج و هشت، تا اونجا که توانستم رو خواندم، تندونم خواندم که آقای دکتر جواب بدم و نمونه، الان بخشی از پیامک رو باز هم خواهم خواند، و یک تعداد دیادی پیامک اومده شماره تلفن های بنیاد نیشابور رو اگر میخواید به سال اطلاعات بیشتری داشته باشید های بیشتری از آقای دکتر فیدونه جنیدی دارید میتونید با این تلفن تلفن بنیاد نیشابور 88 96 27 84 یه بار دیگه میگم هفت 96 27 84 بنیاد نیشابور تماس بگیرید منتظر تدایی شما و شما هستیم که هرچه زودتر تماس بید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید که ما تقسیم بندی زمان رو داشته باشیم و بتونیم تلفون های شما رو پخش کنیم فایده نیز نمی‌دهی. هستند فایده نیز نمی‌دهد، ولی ایرادی هم می‌آورم. به شما گفتم، که ما توجه نکردیم. من هم سمو... نمی‌گم تو خودتون بیاد. بر خودم, ای یاد بله؟ خودم یادم بیاد کم نمی‌شه. یادم بیاد نمی‌برد کم <تصفيق> چنین گف روستم که گردن سپهرش ببینیم تا و بر که گردن روز در جنگ یاری کنید برای دشمنان. کام کاری کارید رستن با عشق بوست بل دلیلی که بود نامو عشق بوست همه برخروشید برسان کوس بیامد که جویت از ایران نبرد ایران در جمع الیفنون میشه ایرانیان با الف نسبت میشه کشور ایران از ایران نبرد یعنی از ایرانیان. بیامد بیا آمد که جویت از ایران نبرد سر هم نبردن در آراد بگرد برون تاخت هام با عشق بوس روحان در شاهنامه نماد پشتونستان و بلوچستانه که فرزند گودرزه و این نشانه پیوند کردان با بلوچان و پشتونانه شماله قرب ایران با جنوب شرق با جنوب. ایران مهاجرت کردن اون تا اخت روحان با عشق بوس بر آمد هر دو سپه بوق و کوز بر آن نامور تیرباران گرفت کمانش کمین سواران گرفت جهانجو در زیر پولاد بود یعنی عشق بوس جهانجو در زیر پولاد بود به خفتانش تیر چون باد بود و گرز گران دست برده اشک زمین آهنی شد سپه رابنوز چروهام گشت از کشانی سطو اینا همه کشانی یا کشانی میخوند و اشتباس اینا کشان ها هستن و کاملا معلومه که اینا کوشانیان بودن اقوام ایرانی بودن در شمال شرق زندگی میکردن که گاهکار زیر نفوز تورانیان بودن بعد ما اینو کشانی بخونیم چروهام گشت از کشانی سطو به پیچید از او روی و شد سوی کوه زه قلب سپا و هندر آشفت توس بزد اسب کاید برای اشک بوس تمتن بر آشفت و با توس گفت که روحام را جام بادست جفت به میدر همی تیغ بازی کند میان یلان سرفرازی کند تیغ بازی یعنی رقص شمشیر ما رقص شمشیر رو در آزربایجان داشتیم تا مدتی پیش ازین دیگه فکر میکنم در آذربایجان ما یعنی در آذربایجان اصلی امروز هم شمشیر نباشه اما من دیدم بعضی برنامه ها رو از اران و کشوری که نام آذربایجان مشهور شد بیناهایت ریباس هم شمشیر نباشه شما دیدین؟ بله من دیدم هم... من تو فیلم ها دیدم بله منم فیلم دیدم بله بله, بله. همون چه کاری که در خراسان با چوب با چوب ماشی. انجام میدن بله. در حقیقت با رقص چوب در خراسان شاهکاره و گمانم که یونسو هم این رو به عنوان یکی از شاکارهای هنر جهانی شناخته ولی خب در آذربایجان واقعا با شمشیره و این خیلی شگفتره که اون حرکات شگفتی که میکنن شمشیرم کسی رو یعنی آزار نمیده. و بالاخره هزاران سال این بوده تیغ بازی یعنی رقص شمشیر بازی اصلا یعنی, یعنی رقص بسمال بازی چوب بازی ینها همه یعنی رقص چوب رقص دستمال رقص شمشیر میگه که روحان شراب نوشیده و در حال مستی داره شمشیر بازی میکنه یعنی داره رقص میکنه نه اینکه مثل یک هم حرکت کرده باشه رفته باشه مقصود اینه به میدر همی تیغ بازی کند میان گلان بازی کند تو قلب سپه را با او این بدار من اینک پیاده کنم کارزار کمان به را به بازو فکند. به بند کمربر بزد تیره چند. خروشید کی مرد را از ما از مای تا اومد مشو باز جایی. بدو گفت خندان که نام تو چیست؟ تن بی سرت را که خواهد گریسنی؟ عشق بوس گفت. حالا که روحان به طرف کوه رفت و رستم میاد به میدان میگه نام تو چیست که وقتی که من کوشت امت کیب برای تو گریه بکنم تهمتن چون این داد پاسخ که نام چه پرسی که از این پس نبینی تو کام خودت کام از جهان نخواهی گرفت و لازم نیست که از من نام بپرسی مرا مام من نام مرگ تو کرد مادر من گفت مرگ تو نام من گذاشت مرگ تو زمانه مرا پت که ترگ تو کرد یعنی که خواهم بود که به ترک یعنی کلا خود و پشت کلا خود بخورم و بمیری بر سر اون ضربه کشانی به دو گفت بی بارگی به کشتن دهی تن به یک بارگی یعنی بدون اسم اومدی به جنگ اینا نبرد سیستانیان است. فهمدن چون این داد پاسخ به دو که ای بیهود مرد پرخاش جوی پیاده ندیدی که جنگ آورد سر سرکشان زیر سنگ آورد به شهر تو شیر و پلنگ و نهنگ سوارند در با کس به جنگ پیاده مرا فرستاد توس که تا اسب بستانم از عشق بوست کشانی پیاده شود همچون من زد و روی خندان شوند انجمان کشانی بدو گفت با تو سلی نبینم همین جز فصوص و مزید افسوس یعنی ریش کردم کردن و شوخی داری میکنی من من نبینم تا تو هیچ جنگ افسار نداری که فقط کمان رو به بازوش افگند و چند تیر به کمرش زده همطور اومده وسط میتون به دو گفت که تیر و کمان ببینی همکنون کتارت زمان زمان این عجل که برای تو عجلت رو میاره کتارت زمان که اجلت رو خواهد آورد یکی تیر زد بر بر اسب اوی که اصفن در آمد بالا بروی. بخندید درستم با آواز گفت که بنشین به پیش گران ماه جفت. سزدگر بداری سرش در کنار زمانی براسایی از کارزار. کمان را بمالی رستم به چنگ، به را آورد تیر خدنگ، ستون کرد چپ را و خم کرد راست یعنی دست راست خم میشه موقعی کشیده نکنه. چپ ستون میشه. ستون کرد. چپ را و خم کرد. راست خروج از خم چرخ چاچی بخواست. یعنی از فشار نیروی رستن. این چرخ چاچی این کمان چرخه. یک بار دیگه در نبرد شماساس و خزروان در سیستون گفته بودم که کمان چرخه. این از نیروی دست این کمان سروکت به صدا کردن خم شدن و صدا کردن دوباره میخونم ستون کرد چپ را و خم کرد راست خروش از خم چرخ چاچی بخواست چپیکان ببوسید انگشت اوی میبینی وقت تیر رو میکشن تا حدی میکشن که تیر میرسه رو انگشت روی شست دست چپ چپیکان ببوسید انگشت اوی گذر کرد از مهره پشت او چه بیشتر این احساس غرور میکن یا همچین پهلوانی یا همچین پای پیاده فقط کمال اون واسه خودش پرولبانی اونم پرولبوان اون ور دیگه اومددید آدم احساس غرور میکنه اجازه بدید پیامک ها رو به خونم تو این فرصت که شنوده ها به سلام پرمک زیاد دادن آیا آثار و بناهایی از پادشاهان نام برده شده در شاهنامه به جا مانده است اه بله، اه پیشتر تا تخومانیش ما آثار زیاد داریم که بعضی از اینا کوبوده شده، بعضی کوبوش نشده، تمام اینها متعلق به داستان‌هایی که در شانه اوموده. مثلا واسون که در شهر سوخته سیستان ما یک ج... که صحبت کردم پیشتر از این، یه جنجومه دختر شونزه ساله ای رو پیدا کردیم که این آب آورده بود مغزش به این, جنج... این دختر رو عمل جراحی کردند. عمل جراحی جمجمه الان پیداست و, به، و یعنی به نتیجه هم رسیده برای که آزمایشان نشون میده که اون جایی که بریده بودن ترمیم پیدا کرد اگر مرده بود اون دختر بی ترمیم اون جایی اره پیدا بود روی جمجمه ولی ترمین پیدا کرده حداقل شش شیش ماه پس از اون عمل این دختر زنده بوده این عمل جراحی و این در حقیقت پزشکی خیلی شگفت در 4850 سال پیش تقریبا همزمان به دنیا آمدن رستم که به گونه رستمزاد به دنیا آمد یا اینکه که ما در جیروف چشم پیدا کردیم مصنوعی که با قیر با باقی با چیزی آمیخته کرده بودن که خراب نشه و این, این چشم مصنوعی الان هست این هم مال زمان شاهنامه است مال دوران کیانیانه و پیشتر از کیانی است بله هست نه در شاهنامه اسم برده شده از یک مکان یک ساختمون یا در ایک... شاهنامه لازم نیست که از یک مکان اسم برده باشه گرویدات های دوره مثلا که خصوه خب ما در اونجا بسیار آثار پیدا کردیم که خصوه در آزربایجان بوده بسیار آثار پیدا کردیم که از نظر زمانی هم من پیشتر در باره زمان با شما صحبت کردیم مقاطع زمانی که زمین به ما میده با رویدات های شاهنامه میسنجیم که اینا به زودی در بیاری از در کتاب داستان ایران به دست ایرانیان میرسه. اون وقت می خوب های زمان که خسرو معلومه اون چی که از اینجا پیدا بشه خوب مسلمه متعلق به شاهنامه و رویدات های شاهنامه است